دلسته یه ده هوند الحمد لله رب العالمين، الله على و ما و و غیر منصوب و قوه اربع نوع چهارم از اسما است که به شکل منصوب گاهن و به شکل غیر منصوب بعضن میاد و چهار نوع میباشد یکیش مستثناز اول و المستثناز اول تعریف میکنه مستثنا نگه و احوال مذکور بعد از و اخوات مستثنا عبارت است از اسمی که مذکور ذکر شده بعد از إبلا و نظائر إبلا مثل غیر سوا خلا عدا عاشا لنسر و ما خلا ما عدا که از اخوات عادت است و اول مذكور بعد الله و اخواتش چرا ذکر میشه بعد از الا و اخواتش ل لدلالته علا عدم اتصافی به ما نسبه اله صادقه ل برای دلالت کردن علا عدم اتصافی بر عدم متصف بودن اون مذکور به آنچه که نسبت داده شده به سابقش یعنی مستثانه یعنی شما وقتی میگید جا ان القومو الا زیدن الا بعدش زید واقع شده برای اینکه که دلالت کند بر عدم اتصاف عدم متصف بودن زید به آنچه که نسبت داده به سابقش نسبت داده شده به سابقش که آمدن باشه یعنی زید متصفه به آمدن نیست یعنی وصف آمدن صفت آمدن برای زید وجود ندارد اگرچه برای قبلش وجود داشت الا زیدن ولو حکمند این لو روش میگن لوی فسلیه یعنی ولو کان از سابق و حکمند ولوکان از سابق و حکمن کانه و اسمش اینجا حذف میشه بعد از لوی وصلیه خیلی زیاد ولوکان یعنی ولوکان از سابق و حکمن این قسم ولوکان از سابق و حکمن میخواد استثنای مفرمه رو هم بگه که داخل در تعریف بیاد چون ببینید وقتی گفتش به دلالت علا عدم اتصافهی به ما نصبه سابقه برای اینکه دلالت کند به اینکه که این ما بعد الا متصفه به آنچه که ما قبل الا بهش متصف شده نیست خب این تعریف تا اینجا شامل استثنائی مفرق ظاهرن نیست زیرا در استثنائی مفرق سابقی اصلا وجود نداره میگه که در استثناء مفرق سابق هست اما سابق حکمیه یعنی تقدیریه حکمن یعنی مقدرن ولو مقدرن میگه بله سابقی وجود داره و اون سابق متصف شده اما اون سابق چیه؟ حکمیه مقدره یعنی وقتی شما میگید ما جاعنی الا زیدون سمانند ماجا علی الازدی در اینجا زید متصرف به ماجاع نیست بلکه متصرفه به جا است زید متصرفه به ماجاع نیست ها استثناء شده از ماجاع وقتی از نیامدن استثناء بشه یعنی چی آمده زید متصرفه به ماجاع نیست ولی ما قبل مقدرش متصف هست اون ما قبل مقدرش کی بوده؟ اهد چون بوده ما جاعنی اون الا زید. اون اهد متصف به نیامدن است اگرچه زید متصف به نیامدن نیست متصف به آمدن پس بنابراین ولو حکمن یعنی ولو مقدرن ولو اینکه اون ثابت چی باشه؟ مقدر باشد مستصنامه در کلام ذکر نش مشخص حکمن رو به شکل های سلام داریم حکمن رو به شکل های دیگر هم میشه معنا کرد ما همین یک شکل رو معنا کردیم و همین مقدار برامون کفایت میکنه که منظورش از حکمن داخل کردن چیه داخل کردن استثنای مفرد میتونه هم مثلا آنه یه مورده به مال هم بگیم که شما خوندیم شما اگر یادتون باشه تو باب هدایه کتاب هدایه ما خوندیم که گاهن مستصنا بر مستصنامه چی میشه؟ مقدم میشه خب اگر مستثنا بر مستصنامه مقدم شد دیگه مستصنامه سابق نیست ولی سابق نیست در لقظه در حکم چیه؟ سابقه. یعنی اگر شما گفتید که ما جاعنی انی الا زیدن القومو ما جا انی الا زیدن القومو این القومو درسته که در نفظ سابق نیست ولی در حکم چیه؟ سابقه در حکم مستثنامن بر مستثنا چیه؟ برای دخول این مورد هم میتونه بگید باشه که ما اگر گفتیم که میخوایم بگیم متأسف نیست به آنچه که سابقش متأسفه ممکن سابق سابق چی باشه حکمی باشه در لفظ سابق نیست ولی در حکم سابق ریزیست دو معنا برای حکم ذکر کردم معانی دیگه اش رو دیگه شما فعلا لازم نذ حالا بخونیم تقریبا باشه خب این تعریف استثناء بود و تعریف مستثنا بود حالا مستثنا دو قسم است یکی استثناء متصل و دیگری استثناء منقطع اگر مستثنا قبل از آمدن استثناء اداتش داخل در مستثنامه بوده و ما خارجش کردیم میشه استثنای چی متصل ولی اگر داخل نبوده میشه استثناء منقطه یعنی از اول قطع از مستثنا بوده الان حکم هم منقضه شدن در حکم اون چه که به مستثنا نسبت داریم در مستثنا وجود نداره فاعل کان مخ یعنی اگر مستثنای ما مخرج بود یعنی چی یعنی اخراج شده از مستثنا مثل جا ان ال قوم و الله زیدن اگه الله زیدن رو نمیگفتیم زید داخل دن بود چون قوم شامل زید و عمر و بکر و ده و خالد و این هاستی که زید داخل بود. اگر اخراج شد مستثنا به وسیله عداد استثنا از ما قبل خودش فمتصلون یعنی فقوه این متصل این استثنا رو بهش میگن استثنای چی؟ مستثنای رو بهش میگن مستثنای و الا الا الله الايه مرکبه است یعنی چی یعنی و ان لم یکون مخرجا و اگر مخرج نبود یعنی خارج شده نبود یعنی چی خارج شده نبود یعنی ما خارجش نکردیم بلکه از اول خودش خارج بود در این صورت فمانقه اون این استثنار بهش میگن استثنای چی چی؟ مانقه مثل جا انه قوم و الا که همار داخل در قوم نبود ما از قوم خارجش نکردیم پس ما با الا چه کاری کردیم؟ ما با الا حکم رو از همار برداشتیم یعنی حکم آمدن رو دیگه به همار بگید نداری میشه استثناء استثنائه موقع مثل چی؟ سجدن ملائکتو کلهم عجمعون الا ابلیس. ابلیس بنابرای اعتقاد این که داخل ملائکه بوده میشه استثناء استثنای متصل بنابر این اعتقاد که از جنس جن بوده و تکلیف داشته اختیار داشته میتونسته سجده کند و میتونسته نکند این قانون میشه استثناء استثنای منغطه علایه ها چه استثناء منغطه چه استثنای متصف ما حکم سجده را که ملائکه بهش متصف شدن گفتیم زید گفتیم ابلیس به آن متصف نیست از نظر اینکه که حکمو از ما بعدش قد بعد کردیم اسم اصنار منقطه چیه؟ یکیه فقط در متصر قبلا داخل مستثنامه بوده ولی در منقطه داخل نه بوده. ولی از نظر اتصاف حکم اتصاف سجود سجده به ملائکه هست و عدم اتصافش به کی؟ ابلیس حالا چه متصل چه؟ منقطه ولی در متصلش میگیم ابلیس داخله در ملایکه بوده منقطهش میگیم ابلیس داخله در ملایکه بگید نبوده خب این هم زیاده. حالا احکام استثنان شو اول از مفرلق شروعه استثنایه مفرلق رو با چی میریمسن؟ با قاف یا قین قین یعنی چی؟ نمیم. یعنی خالی شده چراش میگن خالی شده؟ به خاطر اینکه از مستثنامن خالی شده مستثنامن وسط واقع میشه خالی شده از او خارق شده فل مستثنابه اللا اولم از اللا شروع میکنه مستثنائی به اللا چرا؟ چون اللا رئیس عدواته مستثنامه فل مستثنابه اللا اینلم یوز کر معهول مستثنامن او آره بر به حسب روامن مستثنا به الله اگر ذکر نشه همراه با این مستثنا به الله المستثنا اگر همراه او مستثنا من ذکر نشه اعرب به حسب عوامه اعراب داده میشه به چی به حسب عوامه اعرابش به حساب عوامه به خواهش عامل اعراب داده میشه اصلا الله این وسط هیچ حساب نمی‌کنه آمل قبل از الله چی میخواد؟ همون اعرابی که عامل قبل از الله میخواد بیبریم برای بعد از الله رو مستثنه بگید هم. یک سه. یعنی اعراب مستثنه ها میدیم به مستثنه مستثنه ها مخزوفه دیگه اعرابش ها میدیم به مستثنه اوه به حسب نعوامل و میم مفرقا و اینو بهش میگن چی؟ مفرق ول کلام و معهو غیر و موجبن قالبن و کلام با این مستثنای مفرق معهو یعنی با این مفرق غیر موجب هست قالبن یعنی غیر مثبت است قالبن یعنی چیه؟ ما جاعنی الا زیدون ما جاعنی الا زیدون ما مررت تو الا به زیدن. ما رعی الا زیدن حالا رعب بخواد جل بخواد یا نصب بخواد فرقی نمیکن و در عرص جا دیدید که کلام چیه منفیست استثناء مفنرق در کلام مثبت واقع نمیشه 99 درصد منفیست به چه دلیل؟ ببینید اگر من بگم که جاانی اللا زیدون جاانی اللا زیدون یا بگم رعی الا زیدن، ها؟ باید یه استثناء یه مستثنامه هیچ کار کنم تقدیر بگیرم دیگه اون مثل مستثنامه که تقدیر میگیرم باید مثل لفظ احد چی باشه؟ عام باشه ما جاانی الا زیدون یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نایومد پیش من هیچ کس هم هیچ کس نایومد پیش من مگر زید ها حالا اگر نفیش بره باید بگیم چی؟ هیچ کس نایومد پیش من الا زید نفیش بره باید بگیم چی؟ همه کس اومد مگر زید این مقاله بلطه ما رعیدو الا زیرن یعنی چی؟ یعنی هیچ کس رو نزدم مگر زیر این درسته حالا اگر نفیش بره میشه چی؟ همه کس رو زدن مگر؟ غیب قلطه قلطه استثنای مفرق در کلامه بگید مثبت به دلیل اینکه که متناقص میشه و محال میشه نمیاد مگر یک جا دو جا سه جا در حدی یک درصد دو درصد اونم جایی که مستثناء منه مقدم ام ام آن تقدیر نمیشه مثلا فرض بفرمایید که ما با شما داریم بحث میکنیم در رابطه با خصوص روزه این ماه رمضان درباره در این داری بحث میکنید یکی میگه من یک روز مسافر بودم روزه خوردم یکی میگه دو روز خوردم یکی میگه سه روز افطار کردم ها من بر گردم میگم گم سمت و الا یوم الجمعه سمت و الا یوم اینجا منظور معلومه نه اینکه که و تمام عمرم رو مگر روزه جمعه منظور اینه که چیز سمت و شهر رمضان الا یومل الجمعه من شهر رمضان رو ماه رمضان رو روزه گرفتم مگر روزه جمعه شو روز جمعه شو روزه نگرفتم مسافر بودم مریض بودم در بعض جاها هست که چی که انسان تقدیری که میکنه تقدیر چیه مستثنا منه عام عام عام نیست با قرینه معلومه که مستثنا چیه؟ نسبتا خاصه. در این جور جا ممکن استثناء مفرق این کلام مثبت هم بگید بیا لذا گفت خالبا جاد خب پس این از استثناء مفرق حالا و این زکره و این زکره یعنی چی؟ یعنی اگر مستثناء زکر و این زکره فر این کلام کلامو موجبن تامن چرا من؟ چون زکره خودش یعنی چی؟ تا. موجب تام هم گفتیم چی میشه؟ منصوب از فجوب هم و این زکره فا این کانل و موجبن و موجب چی میشه؟ منصوب میشه بنابر حالا چه متصلش بگی؟ چه منقتش؟ مثالش؟ سجد الملائکتو کله هم اجمعون الا کلام موجب تامه، کلام موجب تامه و هم احتمال منقطع و متصل داره و شده چی؟ مصود و انزو که رفع این کانل کلام موجب هم و, و الا الا رو بی خود گذاشته داخل هیون. و الای الای الای منعکبست یعنی چی؟ ها؟ یعنی اگر موجب نبود اما مستثنامه ذکر شده بود این و یعنی و این لم یک کنه کلام و موجبا و این لم یک کنه کلام و چیچی چی موجبا اگر کلام موجب نیست یعنی منفی یا شبه منفی شبه نف مثل چی نفی و استفهام و نه میناره نح نه یوستم اومد روش میان شبه و الا و این کان متصلا اگر متصل فعل احسن اتباع علی اللفظ اتباع یعنی چی تابه قرار دادن چه قسم تابه میشد بدل میشد میگه احسن اینه که تابهش کنیم بر لفظ مثل چی الان نگاه کنید نه بود. ما فعلوه الا قلیل انجام ندادن دو کار رای قرآنه مگر تعداد کمی الا قلیلون الان ما فعلوهو ما فعلوهو فعلو فعلو مفهور ما هم نافیه میبینی که نفیه دیگه پس استثناء غیر موجبه متصرم هست چون اون قلیلی که انجام دادن از جنس هم این تعدادی هستن که انجام ندادن ها همهشون یه جماعه دادن بودن یک قوم بودن قوم یک پیغمبر بودن فقط قلیلی از اونها امره اون روش کار کردن اطاعت ما فعلوه الا قلیل اون قلیل هم از جنس واوه الان مستثنامه کدومه واوه فعلوه قلیل از اون چی شده اسم از که در قرآن رسیده و بیشتر هم همین سلام ندیکن این قلیدان چیه؟ بدل است از وابه فرد بدل است از وابه فرد حالا چنو بدلیه؟ کل از و ما گفتیم بدل بعض از کل چی رازم داریم؟ و ما گفتیم بدل بعض از کل چی رازم داریم؟ بدل بعض از کلو بدل اشتمال گفتیم زمیر لازم داره لذایه منهم بعدش چیار میکنن تقدیر میدیدن تا اینکه رابط میشه بعضای هم قائلن این منهم بدل بعض از کل در استثناء امتیاج به زمیر نه بعضی هم قائلن که در بدلیت ما لازم داریم زمیر را اما در بدل استثناء لازم حالا خب، خب، اگر لازم دونستیم منحوم تغییرون کن ندانستیم و قائل به قول اون افراد شدیم میگیم منحوم دیگه لازم نیست خب همین ها اگر الا قلیلن هم دراحت کردن اگر قلیلن بخوانن چی میشه استثنام میشه منصوب میشه بنابرای استثنام ولی دیگه احسن بله احسن اتباه اوه علالله نه اوه ما فعلوه الا حالا یه جایی هست دقیقا. یه جایی هست که احتمال تابع آوردن احتمال تابع آوردن از لفظش وجود ندارد نمیشه تابع از لفظ آورد خب چه باید کرد؟ تابع محل ناورد هر کجا نمیشه تابع لفظ آورد تابع چی میاره. محل میارن میگه وعن تعذر اگر متعذر شد یعنی محال شد اگر محال شد چی محال شد؟ تابه لفظ کردن فعل المحل تابه چیش میکنن؟ محل میکنن نه و مثال لا اله الا الله. این لا اله الا الالله ما تو کتاب هدایه یه ترکیبی براش کردیم چه ترکیبی کردیم؟ چجوری بود؟ رو چی گرفت ؟ بله به معنای غیر و گفتیم اله چیه اسم لا الا الله چیه سبدشه یعنی غیر الاله تابه چی هم شده تابه محلش شده ها چون چه الاله بعد موجودون چیه این یه ترکیبی بود که برای لا اله الله ما چیه کرد جو این یه تکیه اون بره شد الان ترکیبی که میخوایم بکنیم میگیم این طور بوده لا اله هم لا اله هم موجودون الا الله این طور بوده لا اله موجودن، موجودون الا الله الان لا اله هم موجودون این لا چیه؟ نفجه جنس اله ها شده مقریبه بعد محلم من آه مبدی برسط محلن لا اله موجودون چیه؟ حوالش الا اله چیه استثناه شده؟ حالا چرا نوع استثناهیه این؟ غیر تامه چیه؟ غیر موجبه چون لا داره لای نفیه جد غیر موجبه و مستثناهی هم چی شده؟ ذکر شده شده یا نشده؟ اله دیگه ذکر شده چون اله نفیه جنس شده خب جنسشو که نفیه آمین مستثنامن هم اله زیگ شده و از طرفی هم الله داخل در اله دیگه اله هم چیه اله دیگه الله و هم اله هم اله هم اله هم خب اگر بخوایم حکم رو جاری کنیم که ما گفتیم احسن چیه تابعا بردن بخواییم تابع بیاریم الله رو از اله تابع بخوایم بیاریم بدل بخوایم بیاریم باید چه بهش بکنیم؟ منصوبش کنیم دیگه چون اله چیه؟ منصوبه ولی میبینیم منصوب بگید نشده الله. پس معلوم میشه تابع بگید اله تابع لفظش نشده چرا؟ به دلیل اینکه اگه تابه بشه از بدون قسم توبه میشه تابه بشه از بدون قسم میشه بدل دیگه می همین الان گفتیم و ما دیروز خوندیم که فرق بدل و عطف بیان چی بود اینجوری بدل جای مبدل و میشه بدل جای مبدل و میشه اما عطف بیان اینطور خب حالا اگر ما بگیم الله بدل است از اله بگیم الله بدل است از اله و منصور قوموها الله باید بره بشینه جای الاخ و این غلط است چرا غلطه؟ چون لای نفی جنس بر سر معرفه در نمیاد اینا رو خونتون که لای نفی جنس بر سر چی در میاد؟ نکره در میاد لا رجوله پدر یادتون باشه گفتیم اگه بر سر معرفه در بیاد یا بینشون فاصله بشه بین اسمو و لا چی میشه تکرار میشه و محمد میشه اینا, یعنی اینا از یاد بره پشترا هم چیزای جدید میاد خب چه گفتی بر بیگردی لا اله الله اله هم اسم الله الا الله اله اسم الله موجود خبرش الا استثناء الله نمیتواند بدل از اله و منسوب باشه چرا به دلیل این که اگه بدل از اله باشد و منصوب باید بگیم لای جنس بر سر الله در آمده و عمل کرده و ما میدانیم که لای جنس بر سر معرفه در نمیاد. پس بنابراین چی؟ بگیم الله تابع محل اله شده محل اله کدون محل؟ محل قبل از اومدن اله قبل از اومدن الله، اله چی بوده؟ مبتدار بوده جلال نفی چنس از نواصف بود دیگه بر سر مبتدار و مبرده شد معلوم خب. لذا میگه چی؟ و انتعذره فعل المحله عل المحله بعیده بقیدشون فعلید بقید میریم سید که معلوم بشه معلومه فعل المحله بعیده نهوله الهه اللا لو و ان كان منقطه حالا اگر منقطه بود استثناء اگر استثناء منقطع بود چی میشه میگه فله حجازیون آقایونه اجازی ها فله حجازیون یوجگون نصب واجب میکنن چی رو نصب واجب میکنن نصب فله حجازیون یوجگون نصب یعنی اگر یک زمانی اینطوری بود ما جاهلی القوم الا را با این هست ما جاهل القوم الا عمار آیونه اجازی ما میگن چی بخونید عمار رن منصوب بخونید بنابر استثنا الان این استثناء غیر موجبه و از طرفی هم چیه این دور باید و تمیمیون تمیمی ها چی میگن یوجوزون الاتباع تمیمی ها و بنی تمیم یوجوزون الاتباع تجویز میکنن چی رو تابه انداختن خبزم میتونی تابه هم یعنی نصبش چیه خوب است اعلاست از نظر تمیمی ها ولی نصب هم ندیم و بدل بیاریم چیه؟ جایز هست یو از بزونن اتباه نه و ما جاعن القوم و الا همارن بنابرای قول آقایون اجازی ها الا همارن او همارون بنابرای قدیم نکنیم که همارون تو اجازی کن. حالا اگر همارون مرفو بخونیم و بدل بیاریم چنو؟ تابعی میشه؟ میشه بدل از کدوم قسمه بدل میشه؟ بدل یعنی همار بعضی از قومه میشه بدل غلط و یادتون باشه دیروز من گفتم که بدل غلط از آدم فسیح واقع نمیشه مگر با لبزه؟ بل به خاطر همین است که ها که لغت قرآن لغت اون‌هاست بدلیت رو اینجا اجازه ندادن گفتن اگر این بدل بشه میشه بدل غلط و بدل غلط لا یغاو منل فسی از آدم فسی باغه بحث با الا گذشت و این احکام همش اجرا بود حالا تتمهتون در رابطه با ملحقات به اهدام عدوات دیگر استثناء که این هم باز خوندیم ول مستثنا به خدا یک اعدا دو هاشا سه اینها دو نوع یکیشون چیه؟ فیل هم و گاه یو غا ها؟ حرف جلد یون سب و معفیلیت ها بعد از اینها اگر اینها فعل باشن منصوب میشه بنابر چی مفعول کوت بوده جا ان القوم جا قومو. خلا عدا هاشا زید ها جا ان القوم خلا عدا هاشا زید جانی جا جاعل در جبر نون به وقایه یا منصوب به نظر این ال خافز القومو فایل خلاف ال. یا عداف یا هاشو زمیر مستتر وجوبی یادتون از نظر این کتاب گفتش نمیر در باب استثناء چیه؟ مستطر وجوب هم زمیر مستطر وجوبی چی؟ فایلش زیدن مفعولون به زیدن مفعولون به این جمله خلا زیدن خلا با داخل و زیدن مفعول این جمله محلن منصوب حال از برای مستثنی محلن منصوب حال از برای مستثنا شد این ترکیب ببینید ما ترکیب لفظی کردیم ها ولی تو ترجمه تو ترجمه کردن هیچ باقی اون زمیر مستطر و خلاق و مفبولون به بودن اینا هیچ کنون تو ترجمه ما جاانی القوم و علم لا با ما جاانی القوم و خلا هیچ فرقی اردوش یعنی چی؟ یعنی قوم نی آمدن مگر زه یا قوم آمدن مگر زه. یعنی در همه جا مگر است مناش و غیر مگر نیست به جز نیست پس پس خلا ادا هاشا به زمیر فائل زید مفعول جمله حال از برای مستثنه بازشش پذیرن. تو باحسه همین کتاب اینجا بازشش مفصلن که این و نبودیم به هیچ نه. دو شما نبودید اون آفراموشی. این که نبودم. از کدوم دست مشخصه؟ یه نصب معفییت ها و یو جر رو معهرفیت ها. یو یعنی چی؟ یعنی اگر خلا، هاشا، عدا، حرف جر شد. ما بعدش میشه چی؟ مجرور اینو تو عوامل هم باز بحث کردیم خب جا انلقومو هاشا خلا عدو زیده گفتیم که اون موقع هاشا خلا عدو زیده میشه جا رو مجرور متعلقه به جا انیم ترکیب ساده اما از نظر معنا چی؟ هیچ فرقی با الا نظر. تو ترجمه همون الا درجمه میشه همون مگر و به چوسی یا جلو یعنی میشه حرفی جل و به لعیسه و لایکونه اگر استثناء به وسیل لعیسه و لایکونه از ادات استثناء مخواد صورت بگیره منصوب اون علال خبریت اینجا مستثنا میشه منصوب خبری خبریت یعنی جا ان القوم و یا جا ان القوم و لایکونه زیدن هرکی عین این قبله جا افل نون نونه و غایه یا منصوب به نصف حافظ فائل. لعیسه و لایکونو فعل استثنا زمین مستتر حوهی وجوبی از نظر این کتاب چی؟ اسمش و زیدن میشه بعد جمله لعیسه یا لایکونو رو هم دیگه میشه چی؟ حال از برای مستثنا حال از برای مستثنا نه؟ و لا یکونو منصوب و نلب و هما اسم اینها مستترون وجودن اسم اینها مستتر است وجوبند همونطور که فائلشون مستتر بود چی؟ مشخصه و اسم هما مستترون وجوبند حالا یه نکته اینجا بگیم که در کتاب عوامل ملا محصر گفته حالا شما که عوامل فرن نهو خوندید می عوامل ملا محصر رو مبارکسه کنید با در اونجا میگه این زمیر احتمال اینکه سه تا مرجع داشته باشه هست خب این زمیر و داخل خلا عدا هاشا یا لعیسه و لایکونه این زمیر و به یک کسی برگرده زمیر قایب حتما نیازه به چی داره؟ مرجع داره دیگه یه بعد سه احتمال هست سه احتمال هست یک جا انال غومو لعیسه حالا ما با لعیسه میگیم بقیه شو دیگه شما خودتون میتونید زمین های داخل رو مثل این درست کنید حالا خلاعه ها شاید چی باشه جا انال غومو لعیسه هوه یه هوه می نمیسید این هوه داخل لعیسه از که اسمشه بعد از هوه یه دونه ضمیر پرانتز باز میکنید یعنی این هوه به این برمیگرده لیسا هوه یعنی ال جائی منهم جاهل القومه لیسا یعنی جای من هم. یعنی اولا این زمیر هوه به کی برمیگرده به اسم فاعلی که از جاهل فم دوم بعض ازور هم یعنی بعض و غومه سمیر و غوه به کی برمیگرده؟ به بعضی که از غوم فهمیده میشه به بعض و سوم سمیر و غوه برگرده به مجی و هم. مجئ قوم مجئ مستد مجئ قوم یعنی آمدنشان بعد پرانتز بسته زیدن دو تا احتمال اول بهتر است از احتمال دوم الان نگاه کنید اینطور میشه معنیش جاهل القوم آمدن پیش من قوم نیست او او یعنی که آمده از ایشان زید نیست بعضی از ایشان بگیر زه احتمال دوم نیست آمدنشان زه یعنی نیست آمدنشان آمدن زه تو آمدن از سر زه افتاده و زه شده منزول بوده لیسمجی یه هم تو احتمال ثبوم تو احتمال ثبوم باید یه مجی هم تقریب بگیرم بگیم بوده لیسمجی یه هم مجی یه زهیدن مجی افتاده شده چی؟ اومده جاش نشسته مزافونه نه جای مزافون شده زیدن یعنی آمدنشان نبود آمدن زید یعنی آمدنشون آمدن زید نبود آمدن کسی دیگه غیر است. پس این زمیر به سه مرجع ممکن است برگرده دوتاش آه نیست یکیش به دلیل به این مجبوریم بر سر مستثنا یک بگید اسمی رو تقدیر کنیم و بگیم بوده مجی زیده به اندازه اون که تایه اول خوب و اسمه مستتر مستطرون حجوم هم حالا اگر ما بر سر این خلا و عداده را چون ما بر سر خلاه و عداده بر سر ها اگر ما بر سر خلاه و عداده در بیاد این ما مای مستریه زرفیه هست مای مستریه زرفیه ان چی؟ یعنی ما بعدش رو تحبیل به؟ مستر میبره و اون مستر چیه؟ منصوب از بنابرا ظرفیت مفهول و فکر بودم اینو توی کجا خوندیم؟ اجلس مادام از ایدان جالس ها تو مادام ها افعال ناقصه گفتیم ماش ما مستریه ظرفیت هست و حسابی هم توزید. هم توی ادایه هم توی اینجا و هم تو عوامه مادام از ایدان حالا ما خلا و ما عدا اگر ما شمایه مستریگه است و ظرفیه حتما باید خلا و عدا دیگه چی باشن؟ بگیر فعل باشن چون با مستریه ظرفیه فعل دارم و به ما عدا و به ما خلا با این دوتا منصوب مستثنه با این دوتا چیه؟ منصوب است بنابرای چی؟ مفکولون به بودن باز زمین چیه خواهدشه بعد اون موقع ما خلا زیدن به مستر میره ظرف میشه منصوب میشه مفعول فی فیه میشه برای جمله تمام حالا دو تا دیگه کلمه داشتیم یادتون باشه از عدات استثناء بود یکی غیر یکی سوا غیر رو را اعراب میدنیم همون اعراضی رو که به مستثنای به اعلام میدادیم به که میدادیم؟ به غیر میگه و به غیر و سوا مجرور رو میلو اضافه دیم به غیر و سوا مجرور است به سبب این دوتا کلمه از اسمای چی چی هم؟ دائمون اضافه چون اینو از اسمای دائمون اضافه اضافه میشن به مابعدشون مابعدشون که مستثنائیس مجرور است دائم حالا خود غیر و سوا چه اعراضی داره؟ میگه و یو عرب و غیر اعراب داده میشه غیر به ما یستهق قهو المستصنا به اندام به که استحقاق دارد به آن مستثنای بگیم به یعنی مثلا الان جا ان القوم و غیر زید چی باید بخونیم؟ جان ان القوم غیر زید چی بخونیم؟ منصور فقط. ما جاهن القوم و غیر زید چی بخونیم؟ ها؟ هم؟ مرفوع؟ هم؟ منصوب کدومش بهتر؟ رفتش بکردیم که فلحسن اتباع و علال لبس همی علا خونده ما جاهن القوم اللاه ما چجور بخونیم؟ بنابرای لغت اجازیگی واجبه؟ غیره بخونیم تمی میگین غیره و غیره هر دو آه. احکام دوره باید بشا اینجا. و یو عرب و غیر به ما یسته قهو المستثنا به این میگه و سوا که غیره این میگه سوا هم مثل است نزد قومی از نها دسته از نها میگن سوا مثل چی میمونه؟ غیر میمونه فقط غیر اعرابش چی میشه؟ ظاهر میشه سوا اعرابش چیه؟ تقدیدیه یعنی مثلا جاهن القوم و سوا زیدن میگیم سوا منصوب است تقدیدن پس این سوا مثل غیر است اندقوم نزد قوم دیگری از نهات ترکیبش راحت داره و ظرف اند آخرین نزد یک دسته دیگه چیه؟ ظرف است اگه بگیم سوا ظرف است همه جا میشه چی؟ منصوب دیگه اصلا فکر این که غیر منصوب باشه بگید نمی کنیم هر کجا بیاد میگید چیه؟ منصوب اما قول مشهور اینه که سوا مثل غیر سوا مثل غیر است و اعراب میگیره به اعراب مستثنائه به ایلا اگر چه قول غیر مشهور اینه که ظرف است داره آم وصالنده ادامه جلسه